اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على نبی نابعاله تاهری خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم روز به خیر عرض میکنیم الله که طاعات و عبادتتون مورد قبول درگاه الهی واقع شده باشد و الله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و به لطف الهی از هر گونه گزند بلایی هم به دور باشید. بحث ما در آخرین موضع انشاء طلبی یعنی بحث ندا به اینجا رسید که عرض کردیم ندا از دو محور مجازیت داره یکی از لحاظ خود ندا کردن که گاه برای طلب اقبال میتونه نباشه یعنی برای زجر و تحصر و اقرام و همسال اینها. و گاه از لحاظ عدوات ندا مجاز واقع میشه یعنی ما عدوات ندایی که برای غریبه برای بعید به کار میبریم یا عدوات ندایی که برای غریبه برای بعید به کار یا به این شکل بگو که منادای قریب رو نازل به منزله منادای بعید میکنیم به خاطر قرز و نکته بلاقید. یا منادای بعید رو نازل به منزله قریب میکنیم به خاطر نکته بلاغی که اگر یک جایی بعید بود و ما غریب او را حساب کردیم و عدات ندای غریب آوردیم گفتیم این به دلیل اینه که میخوایم بگیم تو تو ذهن منی جلوی چش منی اصلا پیش منی من نمیتونم تصور کنم که تو دور از منی آه هی من هی قلب و حضوره هی فه باعث شده که ما او را نزدیک بسرد اما اون جایی که غریب رو، نازل به منزله یه بعید میکنیم و اقل مونه اما عداد ندای بعید براش بیانیم گفتیم سه قرز میتونه داشته باشه یکی میخواییم بگیم تو بلند پرتبه ای تو کجا و ما کجا یکی میخواییم بگیم که تو خیلی منزلت پسته ماستانیم تویم باور کنیم تو مقابل معزید این یعنی منزلت او او رو به منزله بعید قرار داد. که که واقعا ذهنش پرته غفلت و شروع ذهن داره و ما باید داد بکشیم سرش تا متوجه شه این ستا از هم در جایی بود که ما غریب رو نازل به منزله بعید می‌کرد و ما در اینجا مباحث خودمون رو بیان کردیم تکمیل کردیم و خدمت شما گفتیم حالا توی متن کتاب توی بحث اون مجاز دوم که مجاز در اصل ندا هستش رو داره بیان میکنه دو صفحه 211 پاراگراف آخر و قد تخرجه یه نکته هم بهتون بگم اونم اینه آیا امکان دارد هر دو مجاز در یک ندا باشه بل چون دو دوتا قراز جداست ممکنه اصل ندا برای طلب اقبال نباشه میشه مجاز درست شد و از طرف دیگه ممکن است عدات ندا هم بگید سر جای خودش به کار نرفته باشه قیب رو بعید فرض کرده باشیم بعید رو قریب پس بنابراین هیچ گونه هیچ گونه منافاتی نیست که ما هر دو مجاز رو هم در یک کلمه در یک کلامی ببینیم پس بنابراین این حواس خودمون رو نسبت به این مطلب داشته باش حالا با توجه به اینکه من درس رو یک بار دیگه تکرار کردم نگاه کنید به متن عبارت و قد تخرج و الفاظ النداء انما معانها الاصليه وهو طلب الاقبال ان و هو تلب و اینا معان اخرى تو و منن قراره گاه خارج میشه الفاظ ندا یعنی عدوات ندا از معناهای های اصلی خودشون که قریب برا قریب بعید برا بعید از این معنا خارج میشن و هو طلب الاقبال اون توی عدوات ندا این توی خود ندا گاهی اوقات الفاظ ندا یعنی اصلا اون کلام ندایی ندا کردن گاهی اوقات موضوع ندا از معنای اصلی خودش خارج میشه و اون معنای اصلیش چیه که این ازش خارج میشه گفتیم طلب اقبال تو ندا رو چی تعریف کردیم طلب منادی من منادا اقباله او به عادات ما گفتیم طلب منادی منال منادا طلب منادی منال منادا اقباله او به حرفن این به عادات این طلب اقبال معنای اصلی نداست از این خارج میشه واقعا نمیخواییش صداش کنیم چون داره بر, بر به ما نگاه میکنه قلعه از چیزی دیگه است و قوت طلب اقباله این هم معان نخرا به معانی دیگری تو من القرائن که این معانی دیگه از قرائن فهمیده میشه و منحازه المعانی ما یعطی از این معانی هست این مواردی که ما بیان میکنیم رو به روش نشسته پسرم داره قشنگ نزدیکشو بهش نگاه میکنه خوال جوزم هست بگهش میگه عزیزم اینی که میگم گوش کن جان من این مطلب رو بگذار کنم عزیز دلم اینو قبول کن این نداها در اولین جمالات برای اظهار لطفه مخواد لطفشو اظهار کنه تا اون نصیحت این رو به خوب معانی مجازیه ولی این نیستش که او داشته یه جایی دیگه نگاه میکرده و این صداش کرده که طلب اقبال کن یا وقتی روبرون شستشو دارن با هم به میکنن به او توحیم میکنه ای فلان آه؟ این در واقع میخواد به او توهین کنه ندا کردن برای فخش دادنه اینا معانی مجازی متعددیه شما فقط یه چیز رو یاد بگیرید که اگر با صدا کردن ندا کردن واقعا قصد صدا کردن و ندا کردن و طلب اقبال نبود حتما معنا مجازی است و اگه معنا معنای مجازی شد باید ما بگردیم دنبال معناش خب معنا را از کجا پیدا کنیم از قرائن شرایط منادی شرایط مناداد جفتی که داره ندا میکنه مطلبی که میگه اینا به ما کمک میکنه که ما بفهمیم منظور از ندا کردن و صدا کردن چی بود فقط تخرج و الفاظ و ندا گاه یوقات های ندا الفاظ ندا یه های ندا از معنای اصلیش که طلب اقبال خالج میشه به معانی دیگری که تو استفاد و که از قرائن و منحاز حلمانی مایتی از این موارد هست اینها ها حالا چند تا من گفتم دو دارم تا و و منحاز حلمانی مایتی از زجرو یکیش منه معنی کردن زجر کردن راندن از زجر نحی کردن نه معانی زجر نحی کردن معنی کردن راندن که قوله حالا نگاه کنید شاهر داره خطاب میکنه به دل خودش یا قلبو منادای نکره مقصود است یعنی ای دل من ای قلب من به قلب خودش خطاب میکنه حالا قلب او دوره نه نزدیک نا بغلش داره میگه پس چرا یا به کار بود اصل ندا که مجازه چون قصدش این نیست که اون قلب و صدا کنه و اون قلب بگه بله قصدش اینه که اون دل رو نحیش کنه زجرش کنه از کاری که میگه خب میگه یا قلب رو وی حکه وی حکه ما سمعت ناسه یا قلبو. وی هجه ما سمعت لناسهم هم لما ارتمیت ولا اتقیت ملاما یه نفر که عاشق میشه دیگران اول او رو نصیحت میکنن میگن آقا عاشقی آقابت خوشی نداره دلوستن آخرش افسوسه. نصیحتش میکنن میگن اگه قرار بود با تو باشه که خب قبول میکرد حالا که نکرد دیگه با قول خودمون دل بکن نصیحت میکنه اما اگر او پافشاری فشاری کرد و ادامه داد و قبول نصیحت نکرد اونها شروع میکنن به ملامت شروع میکنن به ملامت معلومت کرد حالا ایشون اینطور میگه ای, ای قلب وای هاج وای بر تو ای قلب وای بر تو چرا چرا وای بر تو یعنی ای قلب بمیری هلاکی ما سمعت لناسهم سمع اب که میاد به معنی استجابه است تزمین اونو کرده استجابه یعنی پاسخ مثبت داد مثل اینکه شما تو نماز میگیید سمع الله همه تد ما سمعت لناسهم یعنی ای دل شدی هلاکی ای دل بمیرید وای بر تو. چون پاسخ مثبت ندادی به خیر به کسی که نصیحتت میکن گوش نکردی حرف کسی رو که نصیحتت میکن که لما ارتمایت رما یعنی تیر زد ارتما یعنی تیر خورد موقعی که تیر عشق خوردی موقعی که زخم برداشتی با تیر عشق همون موقعی که نَوَستی آن تیر عشق تو رو کرد، کرد نصیحتگران خیرخواهان تو رو گفتند ولی تو حرف اونها رو استجابت نکرد ما سمیعتل ناسهم لم مؤرتمید ولا لا اتقیت اتقیت به جای ما سمع است و یعنی و ما اتقیت و نترسیدی ملامت رو اونها رو. و پرهیز نکردی از ملامت ملامت هم کردن چکت نگزید خب با توجه به اینکه داره به دل میگه و اون دل عاشق این ندا واسه چی بوده آه؟ مثل این که داره بهش میگه ای دل خاک سرت ای دل خدا ورت داره ای دل حلاکشی این ویحکه یعنی اهلکک الله تو پاسخ مثبت ندارید چون این ماسنه تر بیانیه چون تو پاسخ مثبت ندادی به کسی که خیر تو رو میخواست و از ملامت کسی هم پریز نکرد خب از این این رو گفته واسه خاطر که دل رو اینو بلمش آورده که تو نه حرف کسی رو گوش کردی و نه از ملامت کسی پرهیز کردی اینا رو گفته واسه خاطر اینکه بگید اونو من اشکنه از اجرش کن حالا چرا با یا گفت از اصل ندا برای خاطر اینکه اونو از دنبال کردن عشق منع کنه نهی کنه اصل ندا برای اینه چون دل در کنار روز حالا چرا با یا گفت برای خاطر این که این دل عاشق این دل حواسش نیست این دل دل غفلت نزا با یا خطا اگه بگن چرا یا آورده برای قریب میگیم لقفلت المنادا و شروط ذهنی بخاطر قفلت رو عدم توجه جو عاشق چرا ندا کرده دل خودشو و چرا این حرفا رو بشتده واسه خاطر اینکه اون از عاشقی نست میشه مثل که تو فارسی بگن ای دل ای دل ای دل ای دل, ای دل رو صدا میکنه برا منع از این کار ای دل صد بار تو را نصیحت کردن بوش نکردی ملامت کردن بوش نکردی خب دوم دوم تحصر و توجه یعنی حسرت کشیدن و درد کشیدن تحصر و توجه حسرت و وجه اظهار کردن از تحسر و توجه نه با قول مثل قول این شاید بالای سر قبر معنه زالده ایستاده، داره این طور میگه بسر قبر حالا آیا واقعا قبر معنب نظاره در ازاره صدا میکنه قصدش اینه که اون قبره بگه بله بله بله نه چون اون که نمیگه قصدش اینه که بگو حسرت خودش رو بیانه یاد کشیدن خودش رو بیان کنه مثل اینکه گریه میکنه به سینه میزنه میگه یا حسین یا حسین یا حسین ایا قبر معنه کیف واریت جوده میگه آهای قبر معنه ابن زاید معنه ابن زاید چگونه واریته یعنی ستر تا پوشوندی چگونه تو پوشاندی جود او رو؟ تو چطور تونستی این همه جود رو در خودت جمع کنی ای قبر ای گودان تو چطور تونستی این دریای جود رو تو خودت جا بدی این کیفه برای تحجب معنای مجازی استفان تعجب یعنی چگونه تو این همه جود رو در خود جمع کردی من تحجب میکنم کیفه و آره ایت جوده وقت کانه ای وابا بخالی است و قد کان منحو میخوره به و حالان که از جود او البحر و البحر و مترآ مترآ یعنی مملوعه پر بود و حالان که بر و بحر پر بود انباشته بود منها از جود او او موقعی که بود جودش انقدر زیاد بود که هرچه کشکی دریا بود فرا گرفته بود همه فضا رو پوشونده بود حالا چطور تونستی تو این دریا جود رو در خودت جمع کنی؟ این منحو متعلقه به مترعنه معمود خبر کانه اگر ظرف و جا باشه جایز بیاد بعد از کانه ظرف و جا و اگر اگه به هاییشو باشه جایز نیست وقد کان البر و البحر مطرعن منخوا و حالان که و دریا از جانب او پر بود, پر بود. از جود او پر خوب قبر معن رو صدا کرده برای اینکه اظهار حسرتی رو میگفته گریم میکرده اظهار حسرت و دردو اندو حالا چرا با ایا صدا کرده با اون که سر قبر واسده بوده بخاطر تعظیم یعنی ما باور نمیکنیم که این قبر عظیم این بارگاه در نزدیکی و جلوی پای ما باشه این قیلی آهای قبر عظیم این معن ابن زایده تو چگونه تونستی جود او رو در خودت جا بدی در حالی که خشکی و دریا از این جود پر بود سه عل ال اقراء. اقراء یعنی تشویق یعنی تحریک اقراء یعنی تشویق خب میباک یه نفری آمده پیش یک کسی داره شکایت میکنه از چیزی داره گلگزاری میکنه تو روی اون هم نگاه میکنه ها؟ روی اون شد حواظ شم میگه این طور شد این طور شد میگه طور شد میگه. دارشو ولی یه لحظه وایی میسته مثلا و همین وسطاش که میگه باغذ میگیرد اتش وایی میسته اون شخص برمیگرده بهش میگه که ای مظلوم ای مادر مرده بکن دیده گاهی اوقات یه کسی مثلا میره پیش مادر خودشه گله گله گله اونم نگاه هم کنه ولی یه ذره چی میشه مادر مرده بکن, بکن. بکن. ای بیچاره تو بس. ای مظلوم این در واقع با این ای مادر مرده ای بیچاره ای مظلوم حرف تو بزن داره اونو تشویق می‌کنه علی اغراق که قول کل من اقبلای تزلم مثل گفته شما به کسی که اومده و داره اظهار مظلومیت میکنه شکایت میکنه تظلمو یعنی یشتکی شکایت میکنه اومده میگید یا مظلومو اون داره تو رو نگاه میکنه جلوتم هم هست با یا هم میگی برای اینکه تعظیمش کنی آه. ای بزرگوار مظلوم حرفتو یا مظلومو تکلن بگو بگو خود تو خالی کن داری اون رو میکنی با این ندای که میگی این مظلوم با یای ندای بعید صداش میکنی که برای تعظیم او و اون رو و مظلومی که بهش میگی برای خاطر نیستی نیست که به تو توجه کنه برای خاطر این که اونا دلغلکش میدی که بیشتر حرف بزنی بعدا میگی تکلن خب؟ امایه دیگر مجازیش که ما چند تا دیگه مثال زدیم فقط اصل اینه که شما میدانید که شما میدانید که اینجا ندا به قول خودمون اینجا ندا برای طلب اقبال نیست نمیخواست طلب اقبال کنه شد؟ خوب وقتی برای طلب اقبال نباشه پس معانی دیگری در میان است که اون معانی رو ما به واسطه فرائن متوجه بیشیم حالا آیا ممکنه مثلا دو تا غرز مجازی توش باشیم؟ بله ولی خب یکیش پرونگ تره درست شد؟ یکیش چیه؟ پرونگ و که پرنگ پر تره رو فقط میفهمیم که اینجا نداع معنای حقیقی خودش نیست خود بحث نداع تمام شد بیایید توی نموزش ها نموزش ها در واقع خیلی کامله مشخص میکنه که الان حالا من برای خاطر اینکه شما حداقل ببینیم که چه مقدار از مباحث رو متوجه شدید توی تمرینات تمرینات تمرینات یک بعد از نموزش توی تمرینات تمرینات یک مثال سوامشو نگاه کنید اصو کانن امان لعراکه اصو کانن امان لعراکه تا به انکم سی رب قلبیه سو کان ببینید اینو میدونیم تشخیص بدین نعمان اسم جاییه که معشوقه این شاعر در اونجا بوده و از اون طارفه بوده سکان جمع ساکنه سکان معادل ساکنینه این همزه همزه نداسته میگه ای ساکنین منطقه نعمان و لعراج تیقنو باور کنید باور کنید دعن نکم یقین کنید به اینکه که شما ربع قلبیه سکان ربع بهتری جا اون جایی که تو بهار میرفتن میگه ربع منزل بهاری قلب من محل شماست و ان نکن سو کانون به اینکه شما ساکن هستید زیرب قل بیاه در بهترین جای دل من شما شد در علاق دل من در بهارگاه دل من جای شماست. خب با توجه به اینکه میگه شما باور کنید که در بهترین جای دل من جا دارید از کان کانن و نشون میده که اون افراد دور بودند در مقابلش نبودند در فراغ معشوق خودش کنیم میگود در فراغ معشوق خودش چنین میگفت حالا چطور شده که همزه ندای قریب رو به کار برده همزه رو برای ندای بعید به کار برده یعنی بعید رو نازل به منزله قریب کرده درست است چرا؟ این یه قرز بیشتر نداشت که ما بعید رو نازل به منزله قریب وکرد اون هم عبارت بود از اینکه اشاره تن الی قرب هی من القلب و حضور هی به صح اشاره یه به این داشت که تو تو دل منید، جلو چش منید، کنار منید، کی شما رفته اید که من بخواهم شما را با ندای بعید ندا کنم خود ما دیدیم که این دو از ساکنان امان العراق یقینا به انکم در رفیع قلبیه سکان. خوب اینو فهمیدیم دیدیم که ما میتوانیم مباحث رو متوجه بشیم خب دقت میخواد دیگه, دیگه درس رو بلدی نمونه ها رو همون بدن میتونیم حالا یکی یکی شروع میکنیم به خوندن نموزش ها خوا نموزج لبیان عدوات ادوات ندا به امثلت و ما جرام اینها اصل وضعی فی دایل قریب اول وید و ما خلج انزالک بیان استبد این هم عداد رو و هم ندائل رو داره بحث بود یعنی قریب و بعید سرجای خودشه یا نیست و هر کدوم از اصل خودش خارج شد. نگاه حالا بکنید این پسرش بغلش نشسته بود. و این شخص در حال احتزار بوده پیر بوده در حال مرگ بوده این شاعر پسرشم پیشش بوده او را وصیت کرده این دوره مسققل تسقیر گاهی اوقات برای تلتیفه تسقیر گاهی اوقات برای تلتیفه اصحار لطفه این نه اینکه که پسرش پسر بچهی بوده بغلش نشسته بوده حضرت عبا هم وقتی که بر بانین حضرت علی اکبر لفت گفت یا بنیه بعد که علا دنیا علی ای پس آره من یعنی ای عزیزم ای عزیزتنه الله حضرت فعلی اکبر جوان و برومندی بودند یا بنیه بعدکه علی دنیا علی افا ای عزیز من بعد از تو بر این دنیا خاک باد خاک بر سر این دنیا اه بنیه حالا این به اون بچه خودش که بغل خودش میگه ای عزیز من ای پسر من این عباک کارب و یومهی کارب یعنی قریب مقارب میگه بابای تو نزدیک است به روز موعودش به روز مردش کار یومهی یعنی یومهی المقرب نزدیک روز خودشه منظور یعنی روز مرگ بعد میگه بنابراین پس اذا ای تا علال مکارم فعجلی ما دیگه به قول خودمون میگه داریم میریم بنابراین تو رو نصیحت میکنم اذا ای تا علال مکارم هنگامی که فرا خوانده شدی به سوی فضائل و مکارم مکارم جمع مکروم است یعنی کرم چیز. وزیلت خوب اگر به خوبی دعوت شدی فعجلی شتاب کن عجله کن فرصت خوبی را از دست نده خب حتما همه متوجه شدید که ندا کرده پسرشو بران که اون توجه بکنه بهش اقبال کنه حواسش به این بابا باشه که میخواد چیز مهم بش بگه و با حمزه ندا هم صدا کرد اون غریب بوده بقلش بده دیگاه کنه میگه العداتو الحمزتو و بعد اصطور ملت فی ندایل قریب جریان تو است. است و پسرش رو هم صدا کرده طلب اقبالش رو کرده دون دیگرانه بله، حواسش باشه که این چی میخواد بگه بهش مطلبو گفت دور نگاه کن یا من مثل این که تو دعای کنی شما بگید یا من اسم او دوا و ذکر شفاق شفا یا من اسم او دوا این من کیه ای کسی که نام او شفاست و ذکر او بنی نیازی از همه چیز است این کس خداست خدا که نزدیکه اقرب الیه من حبل الودید پس چرا ما او رو با یان ادا کردیم؟ برای خاطر الوهیت و مرتبتش الوهیت و منزلتش خب. میگه یا من یا رجال کله کلها ای کسی که سخت امید به او بسته میشه بسیار رجا یعنی امید بست رجال باب تفعیلش برای مبالق است خیلی شدید امید بست ای کسی که شدیدن به او امید بسته میشه برای شدای دو سختی ها همش برای حل شدای دو سختی ها به طور کل شدیدن به او امید بسته میشه یا من ای کسی که الی مشتکا و المشتکا یعنی از شکایات المفضه و یعنی الفضه و پناه بردن مستر میمین الیه خبر مقدم المشتقه و مبتدای مفید حسره یعنی فقط به سوی او شکایت برده میشه و فقط به سوی او پناه برده میشه ای کسی که شکایت به سوی اوست پناه هم به سوی اوست یا من علیه مشتقا و المرزم خوب چرا با یا صدا کرد با اون که خداوند نزدیک است و اغرب علیه منحب لبرد معلوم است بلای علم به مرتبتش نگاه کنید العداتو یا و قد اصطومنت فی ندایل غریب که خداست الان خلاف بر خلاف اصل اشارتن الى الوف و مرتبت المنادا و ارتفاع شهر اشاره داره به الوف و مرتبه منادا و ارتفاع شهر زیاد این الان نگاه کن تو تمرینات همین تمرینی که خوندیم تمرین سه از یک الان شما دوش رو نگاه کنید ایا ربه عیا میگه عیا ندای بعیده ایا ربه ای پروردگار من آهای پروردگار من ای خدا قد احسنت عودا و بدعتن لطف کردی به من تو در ابتدا و انتها اودن و بدعت یعنی آخرا و اولا یعنی همه وقت از اول تا آخر تو به من لطف داشتی ای خدا احسنت الگ متعلق و احسنت است اولا و آخرا در ابتدا و انتها خدایا تو من رو فلم یعنی به احسانک که شک از شکر و الفلام از مضافه یعنی شکری این شکر من نمیتونه به در مقابل احسان تو از دست و زبان که براید که از عهده این شکرش گذرا تو از روز اول تا الان همه آنات به من لطف داشتی خدایا من هر چقدر هم شکر کنم همه وجودم هم شکر شود نمیتونه از دست و زبان من شکر تو برآید خب چرا آیا گفت با اون که رب نزدیک است به خاطر اولو مرتبت منادا و افتفاع شهدش قال عبول عطاهیه قال آقای عبول عطاهیه میگه میگه ایا من آشف دنیا طویلن طویلن اینجا صفت یک موصوف مقدره یعنی زمنا طویلن و هم بهش میگن مفعولان فیه بنیابه اون دید. ایا من آشف دنیا طویلن آهای کسی که تو این دنیا زمان طولانی زندگی کردی آهای کسی که سالها از خدا عمر گرفتی ایا من آشف دنیا طویلن و افنل عمر غیلن و قالن و افنل عمر فیقیلن و قالی و افنا ال یعنی عمره او فرام و فانی کرده از بین برده ای کسی که فانی کرده و از بین برده عمره او عمر خودشو شوفی و قالن در اینکه این چی گفت اون چی گفت؟ این چی گفت این چی گفت؟, این چی گفت؟ همه عمرت به دنبال این بودی که این چه گفت آن چه گفت؟ آی کسی که عمر طولانی در این دنیا کردی و حاصل عمر تم بوده که این رو فنا کردی در غیل و غال و افنا به جای آشست و افنات عمر فی غیلن و غال ال عمر یعنی عمر فی غیل و غال. و اتعب نفسه و نفسه او فی ما سیفنا و ابا بازد به جای آشست مثل اف و او و کسی که خسته کردی خودت رو فی ما سیفنا در چیزهایی که فانی میشه از بین میره دنبال یه چیزهایی دنبال امورات فانی دنیا رفتی و اطعب نفسهو و خودت رو خسته کردی و از پا انداختی در به دست آوردن چیزهایی که فانی میشد و جمعه جمعه یعنی جمع کرد جمعه تجمیع یعنی باب تفقیلشه یعنی خیلی جمع کرد مبالغه و جمع من حرامن او حلالی و بسیار جمع کرده است جمعت به جای آشست خب وقتی آدم بخواد بسیار جمع کنه میشه من حرام او حلالن چون بسیار بخوای جمع کنی دیگه قاطی میشه هریست که باشی در جمع کردن حرام و حلال میشه و حرام هم مقدم لذا میگه ای کسی که تو این دنیا عمر طولانی کرد و تمام عمرت هم تو بگو مگو گذراندی و خودت هم خسته کردی در چیزایی که هیچ ارزشی نداره و از بین میدار و همه رو جمع کردی هرچی بود جمع کردی از حلال و حرام خب این شخص که این خصوصیاتش رو داشت صدا کرد, کرد. بعد میگه چی؟ این جواب نداست حب دنیا تقاد و علایی که حب اون دید حب و تعلم این دوتا فعل فعل عمر استفاده میشن جامدن دیگه سیغی دوم اینه حب یعنی زنه زنت گمان کن تو افعال قلوب استفاده میشه و یه سیغم بیشتر است. حب یعنی زنه تعلم یعنی اعلم باور کن میگه حب از دنیا مفعول اولش یعنی زن نه از دنیا گمان کن این دنیا این توغاد و الهی که افن مفعول دومش گمان کن که این دنیا توغاد و که کشیده میشه آورده میشه به سوی تو عفن یه دونه بدون این که تو بخوای. آن دونه قصده به خودی خود بدون این که تو زحمت براش بکشی شب بخوابی صبح بلند چی شدی شده قارون همه چی بدرسید میگه فرض کن دنیا چنین باشه همه دنیا آورده بشه خدمت شما بدون زحمت عفن دونه قسته همه دنیا تقاد و علیکه میگه اگه فکر کن دنیا رو مفت و جانی بدون این که سر سوزن براش زحمت بکشی تو بدن فرض کنید گمان کنید علیس مسیر ذالک للزوالی آیا باز هم این دنیای مفت و مجانی که به آدم دادن سرنوشتش زوال و از بین رفتن و زائد شدن و نابود شدن نیست میگه مفت بدن نمیمونه مفت بدن بدون اینکه تو کاری براش بکنی نمیمونه سرنوشتش چیزی فایده است فانیه اونم بمونه تو نمیمونی خب پس بنابراین تو اومدی برای همچین چیزی داری خودت رو فدا میکنی علی مسیر و زالکل زوالی قطعا سرنوشته این زواله هیچ شکی درش نیست آیا سرنوشت زوال نیست هست؟ صد درصد چرا؟ پس ارزش نداره خب چرا؟ آقای عبول اطاهیه. این از زهدیات آقای عبول است چرا آقای عبول با عیا گفت به این شخص و او رو با عیا ندا کرد برای اینکه که اون اقبال کنه به طرفش اما او حواسش پرد بوده داشته دنیا طلبی میکرده از شپ و راست جمع میکرده از چه مخواسته. به خاطر شرود ذهنش و قفلتش با عیاب کار برده نگاه کنید الا و عیا و دوست استهملت بیندا و قریب الا خلاف الاصل اشاره تا قفلت مخاطب اشاره داره به قفلت مخاطب بعدی را نگاه کنید و قال سوار بن المزرب آقای سوار بن مزرب پایین میگه کار بو یومهی ای مغار بو یومه لذی یموت موتوفی. فی نزدیک شده به اون روزی که توش خواهد موند به روز مرگش سوار ابن مزربو میگه شاعرون اسلامی کانمه قطربن با ما قطربن فجاه در کنار هم بودن از شاعرهای اسلامیست و خبم این بنی سعد تمیم از طایفه بنی سعد تمیم یا یوها القلبو، یا یعنی یا یوها، خاطر وزن شعر ما یا القلب خاندی، یعنی یا یوها القلبو، مثل یا, یا یوها لذین آمن، یا القلب القلبو، هل تنها که ما و ازتون او یحدفا لک طول الدهر نسیانا قلب خودش رو داره مورد خطاب قرار میده ندا میکنه خب به او هم نزدیکه این قلب تو سینهشه ولی داره با یا ایها میگه چرا چون این قلب قلب آشق قافله. باید او رو با ندای بعید صدا کنه به خاطر قفلتش و شرود ذهنش خب حالا چرا ندا کرده این قلب برا خاطر همون زجر ملامت قلب میگه یک یه, یه هل قلب ای دل من آهای دل وامانده من اینطور ال تنها که آیا موعظه در تو تأثیر میکنه؟ آیا این همه موعزهی ای که تو رو میکنن در تو تأثیر میکنه؟ او یهدسن دو جور است دیگه یکی اینکه که میکنند تأثیر کند عاشق دست بکشه یکی اینم که طول زمان وقتی ببینه که خلاصه نشد لنانچه از دیده رود از دل رود شود میگه آیا میشه این همه مدتی که گذشت و دیدی که دست به جایی نمیرسه و عشق فایده ای ندارد آیا هل یهدسن لکه طول و دهره نسیانا این یهدسن از بجای تنهاکست یعنی حل یه آیا ایجاد میکنه برای تو طول و در این مدت طولانی روزگار که عاشق بودی و این آشقی بلند مدت آیا برای تو ایجاد میکنه فراموش یعنی آهای دله و آمانده. آیا میشه به حرف موعظه کسی گوش کنی آیا موعظه در تو تأثیر میکنه و آیا این همه مدت که گذشت میشه که فراموشش کنی فراموشی برای تو ایجاد میشه به واسطه طول دهر او یهدسن لکه طول و دهره نسیانا میگه تو یا عداتی یا یاست و قد استهملت به ندایل غریب استعمال شده در ندایل غریب الا خلاف الاثر است عن المنادا غافل اشاره دارد به اینکه منادا قافله لاهن لاهیست یعنی در لهو در لعب فاکانه قریب فکانه غیر قریب پس انگار که اون غیر غریبه قریب در جسمه جسمش غریبه اما حواسش ذهنش روحش غریب نیست به همین دلیل ما او رو با ندای بعید صدا می کنم ای یا قلب و هل تنها که مو عزتون ای یه ده رو دهه نسیان نگاه کنیدین و كتب والد لولده ینسهوه یک پدری برای فرزندش نامه ای نوشته ینسه یعنی او رو سفادش میکرد نسلی حد میکرد خب همین نشون میده که دوره دیگه نامه نوشته داده دست کسی بره خب اگر میخواد رو ندا کنه با توجه اینکه این که دوره باید از ادوات ندای بعید استفاده کنه ولی نباکم میگه اه حسینو اه حسینو با ندای غریب صدا کرد. چرا؟ به که میگه درسته که تو از نظر مادی و جسمی از من دوری ولی تو پیش منی تو دل منی جلو چشم منی مثلا نمیتونم به تو صدای بلند بکنم، خب برال نشستی تو ذهن منی اه حسینو این می و معدبون آهای حسین من موعظه میکنم و عدب یعنی تو رو موعظه میکنم و تو رو ادب میکنم اه حسین و اینی و معدب ففهم پس تو هم خوب گوش کن. یعنی من نصیحت مخوام بکنم و ادب مخوام بکنم بنابراین این فافای نتیجه است پس بنابراین تو هم خوب گوش کن. حالا چرا خوب گوش کن؟ چرا خوب بخنم این نه برای اون ففهم اینم تحلیله یه تفریه نتیجه سبب نید. زیرا فَإِنَّ الْقَافِلَةَ الْمُتَعْدِبُ فَإِنَّ الْآقِلَةَ الْمُتَعْدِبُ زیرا آقل اون که عدب میشه ادب منحصره در شخص آقله آقل, آقل منحصره در اون که عدب میشه فَإِنَّ الْآقِلَةَ الْمُتَعْدِبُ آقل یعنی کسی که ادب داره عاقل بی ادب نیست. این و انل عاقل که هر دو تا داره مفید حسره حالا میخونیم. یعنی عاقل فقط اون که ادب داشت. عاقل منحصر در ادبه. فئنل عاقل. پس ای حسین آقا من نصیحت میکنم و ادب میکنم. تو هم حواست رو بنابراین تو هم حواست تو خوب جمع کن خوب به من گوش کن زیرا آقل فقط اون کسیه که ادب رو میپذیرد آقل اونیه که ادب را میپذیرد خب این چی داره الاداتو الهمزتو وقد نودی به ها البعیدو علا خلاف است شده با اون بعید برخلاف است اشاره تن الهن در مرادا حاضرون به ذهن منادا حاضر در ذهن لا یقی بو ان البال از ذهن نمیره ره بیرون و کانه حاضر جسمان انگار او حاضر جسمان جسمان با سیس نقطه و با سین به معنای جسده انگار حاضر جسد یعنی انگار حضور فیزیکیش اونجا حاضر است پس بنابر این این رو دید گاه کنید که تمرینات حالا این همه براتون موت نسب و کن. شعر متنبی رو ببینید و همین تمرینات یکستتاب میکنه به صف و دوله. مدح سیفو رو میکرده سیفو دوله هم مقابلش وای و اینش میکرده میگه بهش میگه یا ساید جحفل مرعوب جانبه ای کسی که سید میکنه لشکری رو که از گوشه از اون خوف بلند است. یعنی یه لشکری که زره از اون زهره رو میتره کنه. تو این لشکر رو یه دفعه سید میکنی. ای کسی که لشکر دشمن رو که زهره انسان رو میتره کنه قسمتی از اون آه، تو سید میکنی. میگه ان اللیوس آهای بزرگواری که لشکر و غورتش میده لشکری که یه قسمتش قابل تصور برای کسی نیست یه لشکر بزرگ از لشکر روم مثلا اول رو یهجا ا دم تیغ میگذرنه شکار میکنه ای صید کننده لشکر عظیم که قسمتی از اون زهره میترکونه. ان نلویوس لویوس جمع لیسه یعنی شیر شیران تصید و اهدانا اهدانا احدانا یعنی واحدن واحدن واحدن, واحدن. یکی یکی اهدانا درست شد؟ یعنی واحدن واحدن میگه بابا شیر اگر یک موقعی شکار کنه از انسان ها یه دونه یه دونه شکار میکنه کجا شیر میتونه یه لشکر رو یعنی شیر هم ذرهی از شجاعت تو را ندارد این لل و تسید الناس شیرها سید میکنند مردمان را یکی یک اگه شکاری از انسان بکنه یه دونه مغ... انسان ها رو تشبیه به شیر میکنه. شیر کجا با تو کجا تو یه لشکر و یه دفعه میدی شیر اگر هم از انسان ها شکار کنه یکی یکی پایین نگاه کنید الجهفل الجیشل کسیر الجیشل کبیر شوی بزرگ لشکر بزرگ یعنی علی اصود شیران و اهدانا جمع و واحد یعنی واحدن واحد. و اصله و وحدانا وازگاهی اوقات تبدیل به همزه میشه میسه ارث کلمش ارث از ور سیر سوز ما میبینیم که اینطور. جمع و واحد و اصله و وحدانا یقولا انت اشد و بدشان من الاسد تو از شیر قدرتمندتری لأن العدد یه الناس واحدا ناسا زیر شیر مردم رو شکار کنید یکی یکی و انتها سید و به یعنی به تمامه اما تو مردم رو لشکر رو کردی تحسیب مختص تخصص اختصاص داده یعنی به عمل آخر تو نگاه واقعی به چیزی به چیز دیگری یه چیزی رو مختص کنیم به یه چیز دیگر بگیم علم مختص فلانیست علم رو مختص بود. یا بگیم فلانی مختص به نحوه اختصاص داره به نحوه یعنی دیگه صرف بلد نیست بلاغت بلد نیست. شد اختصاص امری به امر آخر به یک امر دیگر اما نگاه کنید ما میاییم یه چیزی رو به یه چیزی اختصاص میدیم مثلا میگیم اخوست سکر یا الله بل عبادته به عبادتنا اخوست که یا الله اختصاص میدیم ترا ای خدا به عبادتنا به ستایش خودمون یعنی ستایش خودمون رو منحصل در تو میکنی میشه کسی دیگر ستایش نکن. خب من با چی گفتم با یه جمله. اخوست سکر یا الله بله بد. آیا این تخصیص امری به امری شد یا نه بله شد تخصیص و عمری به امری اما این نوع از تخصیص که زیادم هست این نوع از ها رو ما اینجا بحث نمیکنیم، بلکه ما به طراغ مخصوصت هم. به طریق مخصوص که چهار تا راه داره ما چهار مسیره که اینها رو بهش میگیم تخصیص اصطلاحی بحث میکنی بله تخصیص ممکنه به واسطه چیزای دیگه هم صورت بگیره اونارو رو باید سماعی یاد بگیرید اما این چهار طریق طرق اختصاصیه و اینها قیاسیه این چهارتا رو ما بحث میکنیم و 90 درصد تخصیصات هم تو همین چهارتاست نهی مثل چی میمونه مثل تعجب تو نحو باب تعجب که بحث می کنند از چند تا سیغه بحث می یکی ما احسن از زیدن یکی هم احسن به زیدن میگن سیغت ها از تعجبه دو سیغه برای انشاء تعجب یکی ما احسن از زیدن زید چه زیباست احسن به زیدن زید چه زیباست آیا تحجب فقط با همینو نه ما تو همین درسای خودمون هم خوندیم واحن لعیام سوا گفتیم واحن اسم فیل برا تحجب کیف وارعی تجوده امروز من گفتم گفتم استفان برا تعجب. اصلا میگه عجب انله ها ذره شد برا تحجب م? برا تحجب کردم اظهار تعجب، تو زبان عربی الفاظ و عبارات مختلف زیاده اما دوتاش قیاسیه قاعد که نهات ازش بحث میکنه یکی ما احسن زیدن و دیگری احسن بزیدن این هم مثل همینه برای قصر و فقط درست کردن شکلهای مختلفی وجود داره شکلهای مختلفی وجود داره که اونها رو باید سمایی انسان یاد بگیره بشنبه یاد بگیره اما چهار راهش رو بلاغی ها که عمده باب قصر هم درونه این چهار راه رو به عنوان طرق قصر ذکر میکنه. لذا توی قایده 57 گفت القصرو یعنی قصر اصطلاحی عبارت هست, هست تخصیص و امرن با آخرت اختصاص دادن مطلبی امری به امر دیگر به طریق مخصوص با یک طریق مخصوص حالا اون طریق مخصوص که بهش میگن طرق قصر چهار تاست که تو 58 تو میبینید میگه تراغ قصر المشهورت و عربان تراغ قصری که مشهوره و بلاغی ازش بحث میکنن چهار تاست اما غیر مشهورم داره که ما اونا رو گفتیم تو سماع شما باید یاد بگید. این یه نکته که یاد گرفتیم که بحث قصر رو ما دیدیم مطلب دوم مطلب دوم که میخوام بگم از قصر عبارت شد از تخصیص چیزی به چیزی با طریق مخصوص که طریق مخصوصاً چهار تاست که بیان خواهیم ببینید وقتی میگیم تخصیص چیزی به چیزی یه چیز به یه چیز اختصاص پیدا میکنه یه چیز منحصر در یه چیز دیگه میشه پس ما یه مقصور داریم یه مقصورون علیه یه مقصور این ها درشون طرفین قصر مثل منادی و منادا که طرفین ندا بودن اینجا طرفین قصره یکی مقصور چیزی که قصرش میکنی یکی هم مقصور علیه چیزی که بر او قصر میکنی یعنی اگه گفتیم علم منحصر است به زید علم فقط مال زیده علم میشه مقصور یعنی قصرش کردیم زید میشه مقصور علیه علم دادیم به زید و گفتیم مالش که دیگه نید برست شد پس یه مقصور ما دادیم برست شد یه مقصوران علیه میتونه تشخیص بزید دیگه چون با یه تخصیص و عمره به عمره ده. عمر اول میشه مخصور عمر دوم میشه مخصوران علیه تو نفش میگونم محصور و مخصوران فی خب قاعده پنجه و نه رو ببینید میگه لکل قصرن طرفان برا هر قصری دو تا طرف هست خب مخصوران و مخصوران علیه یه مخصور داریم چیزی که قصر میشه و یه مقصوران علی داریم چیزی که چیزی در او هستی میشه خب اینم فهمید بعد نگاه کنید یه مطلب دیگه دست که دو طرف داره مقصور و مقصوران علی این مقصور و مقصوران علای همیشه یکیشون صفت یکیشون موصول یکیشون صفت یکیشون موصوفه اینو تو ذهن داشته باش و یاد بگیر این تخصیس و امرن این امر اول چرا گفت تخصیس و امرن امر گفت چون ام ممکنه صفت باشه ممکنه موصوف باشه به آخره یعنی به امر آخر این امر آخر ممکنه صفت باشه موصوف حالا اگر اولی صفت باشه دومی موصوفه اگر اولی موصوف باشه دومی صفت پس قصر خودش به دو دسته تقسیم میشه در کل همه قصرها دو جورند، یا قصر صفت در موصوفاند یا قصر صفت در موصوفند یا قصر موصوف در صفتاند یا قصر صفت در موسوفند. یا قصر موصوف در صفت این مطلب رو گفتیم حالا نکته منظور از صفت و موصوف در اینجا صفت و موصوف لغوی نه اون صفت و موصوف نحوی که شما میخوندید که در تعریف و تنکیر و اعراب و تذکیر و تانیث باید مطابقت با موصوف بکنه آه و حتماً موصوف بیاد بعد صفت براش بیاد نه اون نیست شما کاری به صفت و موصوف نحوی ند منظور از صفت و موصوف در اینجا صفت و موصوف لغوی است طاحو موصوف اونیه که ما خارجی داره خودش مستقل مستدل صفت اونیه که وابسته بینه قائم اینه به اصطلاح. الان مثلا سفید بودن صفته زید موصوفه. اگه بگیم سفیدی مال زیده زید فقط سفیده و میشه قصد صفت در چرا؟ چون سفید بودن یه امریه که قائم به غیر شما سفید بودن رو پیدا کنید ببینید. شیء سفید رو میبینید. اما زید هست. وصف سفیدی داره. ثروتمند بودن یه صفته. زید موصوفه انا و ثروتمند بودن منحصده در زید. این طوره. علم یه صفت زید مصوف علم در زید پیدا میشه شد. مشخص شدن سفت و مصوفه. زبان عربی یه ماهیت ثابتیه زبان عربی یه واقعیتیه ثابته این موصوفه زیبا بودن صفته میگه زیبایی مال زبان عربی پس ما صفت موصوف رو اینجا شناختیم. موصوف اونیه که قائم به ذات خودش مستقل میتونه باشه. صفت اونیه که قائم به ذات نیست، باید در ذهن کسی دیگری پیدا بشه. مثل زیبا بودن، ثروتمند بودن، سفید بودن، قوی بودن، ما قوت اینا همه صفت موصوف قائم به ذات است و صفت قائم به غیر و منظور از موصوف و صفت موصوف و صفت لاقضی است حالا اگر اینو یاد گرفتی قاعده 60 رو ببین ینقس مل قصر رو قصر به طور کل ینقس ما ال رو به اعتبار ای به اعتبار دو طرفش که مکسور و مکسوران علی هستش ینقس ما قسمین به دو قسم تقسیم میشه یک قصر و صفتن علا موصوفن. قصر صفت بر موصوف دو قصر و موصوفن علا صفت. قصر موصوف بر صفت لذا ما هم تو تعریف گفتیم تخصیص و امرن به آخره به طریقن مخصوص بعد گفتیم تراغ قصری که مشهوره چهارتاست این چهارتا یک دو سه چهار خواهیم گفت درست شد؟ اما یه حاشیه پایین داره نگاه کنین. غصر منحصر به این چهارتا تا نیست. غص ممنوع یا الله و بل عباده قصر داره تخصیص میده. مثل اینکه گفتیم یا این ای یا ای از طریق مخصوص ساخته شده، سیاسیه. اما اقصو که یا الله و عباده چنین نیست. طریق سماویشه. درستو نگاه کنین. خناکت تراغن لقصر غیر و حاضه ما ترغی برای قصر غیر از این چهارتا هم داریم منها یکیش زمیر الفصر زمیر فصر یکی از فوایدش قصر یکی هم تحکیدی یعنی وقتی شما میگه علیان هوش شجاع یا اولائی که هم المفلحون اینجا شجاعت و منحصر در علی کردی علی فقط شجاع است ترجمه میشه شجاعت مال علیست فقط بعد اون هوه تحکیدم میکنه باید بگیم مثلا قطعا شجاعت ازان علیست فقط اون ترجمه شون میشه علیان هوه شجا با زمین فصل و منعه تصریح به لفظ وحدهون یکی هم تصریح کنی با لفظ وحدهون یا لعیس غیره یا لعیس غیره نه با تو محمدن وحدهو من فقط محمد اکرام کردم یعنی هیچ کسی دیگر اکرام خودم منحصر کردم در محمد این قصر صفت در موسوس اکرام کردن من منحصر در محمد است محمد موسوس علی یون هو و شجاع شجاعت منحصر در علی است فقط شجاعت صفت منحصر شده در عدی بصت صفت در موصوف اکرم تو محمدن وحدت میگه اینهایی که شما ای حالا وحدهو نباشه لیسا غیرو باشه اینها ها و لاکنها لا فعد من طرق هل اصطلاحیته اینها را از طرق اصطلاحی قصر به حساب نمیارن از طرق اصطلاحی قصر نیست طرق اصطلاحی این چهار است که ما خواهیم این چهارتا طرق اصطلاحی قصر پس من قصر رو برای شما تعریف کردم درست شد همون قصر رو طرف هم گفتم که مقصور و مقصور رو نداریم بعد هم گفتم هر قصری دو نوعه قصر صفت در موصوف موصوف در صفت و بعد هم گفتم که منظور از صفت و موصوف در اینجا صفت و موصوف لغویست صفت و موصوف، لغویست نه صفت و موصوف نحبی و استلاحی صفت و لغویست موصوف اونیه که قائم به ذاته صفت اونیه که قائم به غیره درست شد؟ این منظور بحث ما بود تا اینجا و گفتیم هم تو تعریف که میگه القصر و و امرن و آخره امر به کار میبره برای این, این تعریف شامل تخصیص صفت به موصوف و موصوف به صفت بشه لذا از یک لفظ مشترک امر استفاده کن حالا اگر مثلا قصر صفت در موصوف باشه میگیم تخصیص و صفت به مصوف به طریق مخصوص. اگر قصر موصوف به صفت باشه تخصیص و مصوف به صفت به طریق مخصوص قصر دونونه قصر صفت در موصوف محصول در سفر اینو خواستم مقدمه سازی کنم برای اینکه جلسه بعد یه مقدار این رو اول جلسه یکی دو دقیقه توضیح میدم بعد طرق قصر رو میخانیم خود قصر هم از اون درس هاییست که دو مرحله ایست درست شد؟ دو مرحله است که قصر برای بار دوم به یه چیزی دیگه تقسیم میشه که مبحث بسیار زیبا و برای ترجمه و فهم عالی که حواستون باید خوب جمع کنید خداوند انشاءالله توفیق خودش رو شامل حال شما کنه موفق و معید باشید تا آت و عباداتتون هم قبول باشه از این اگه استفاده کنید و استفاده خوب هم نکنید که بتوانید پیشرفت خوبی هم داشته باشید و دعا میکنید خدا الله هر چیزیدتر مشکلات حل کنه ساحل امنی پیدا بشه و انشاءالله به شکل حضوری در خدمتتون باش و سلام علیکم و رحمت الله و برکات